أوزور الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهیت استعیت او خیر و موافقت نامای اول جلسه مون با ذکر نام خداوند متاهل و همچنین سالاباتی بر محمد و علی محمد باشد. اللهم علیه و سلم درس این اصول شما الفائده است کتاب الفائده حتماً توجه داشتید این کتاب با کتاب‌های توری دیگری مقدار فرق کتاب الفائده یک دور اصول نیست مثل علم مجاز و اصول فقه مصعرفه همچنین بخشی از ال اصول رایج که تو بوزه میخونیم هم نیست. مثل سر واسائل. واسائل شیخ در واحه بحث حجج و امارات به اضافه تعارض رو مطرح کرده. اما این در مثل اون هم نیست. پس این در واقع نوع سومی از چهار و اصولی میشه. چه نوع کتابی هست؟ حتما مطالبه هم بودید کتاب رو یه داشتید. یه سری از بحث های مهم و اصولی که در کتاب های اصولی رای ما کمتر مورد توجه واقع شده. این بحث ها رو آوردن استفاجش کردند و یه مقدار بهش پرداختن بحث هاش در یه کتابی جمع کردن شده کتاب الفایه. بحث هایی که در این کتاب هست در کتاب الفایه من خب کتاب جلیله دیگه این کتاب ثابتگاه نیست کتاب چند سال نوشته شده و داره تدریس میشه من این کتاب رو نگاه کردم و دیدم بحثاش بحثه خیلی خوبیه بحثه مفیدی. حالا خود کتاب کتاب خوبی هست یا نه این یه مطلبتی هست این رو باید با هم ببینیم و هم جذابت ولی بحث هایی که توش انتخاب شده، بحث های لازم، مهم و مفیدی هست به طوری که یه طلبه این بحث ها رو اگر ببینه تو فقه ها اینا خیلی به دردش می من برای همین طلب اول که اختیاری بود تبدیز بین اصول رسائل و این الفائل از چند جهت من این رو موافق بودم و این رو انتخاب کردم. یکیش این که ترم دوش دیگه اجباری و خایق باشه. ترم دو اگر الفایق رو اجبارا باید ببینیم نیمه دوم الفایق رو خب چه بهتر که ترم اول هم نیمه اولیش رو که بگیم بله. بعد بایدهای هشته ما یک دو کتاب الفایق رو دیدن. و این خیلی جالب نبود برایم که ترم اول رسائل بخونید ترم دوم دوخون نیمه دوخون علفه ببینید این یکی از مهمترین درمی ها بود برنامه که علفه رو ببینید شما در این دوخون برایم اینکه این کتاب این رو انتخاب کنیم و با هم بخونیم این بود که شما با مطمئه رسائل آشنا شدید رسائل شیخ انسالی سال در مفصل بهش پرداختید خوندید. حالا و از دوستان بودو بنده خدمتشون بودیم از دوستان دختلاسایی بودیم متش شیخ انسایی رو دیدید نظر همون شما که قطع زن شیخ انسایی رو دیدیم برایتشم ببینید میتونید بفهمید میتونید بخونید و در واقع اگر ما رسایل شیخ انسایی رو میخواستیم بخونیم به همون روال سابق اگر میخونیم خب این یه کار تکراری باشه مرد تا شده برنده سبب و و کتاب یکی اگر میخواست کار خاصی می رسال انجام بدیم که نمیشه معمولا نمیکنن این کار رو برای خودش مقدماتی میخواست تمهیداتی میخواست که نیست در واقع به نظر که سال دوم رسال برای یک اختلابه تقریبا یه مقدار میتونه تکسی که نظر باشه. اطلاف وقت نشه. مثل لومه. شهر لومه. طلبه سال اول شهر لومه. دیگه پاو مزر شهید اقردشانی آشان میشه. باشه, باشه آشان سال دوم باید یه جور دیگه بخونه. سال سومش بومش یه جور دیگه بخونه که نمیکنن این کار رو. من موقع هم طلبه. همون حدود و دیات و اینها رو همون جوری بخونه که تحالت رو خونه. حساتی همون جوری بگن. این قرار واقع اتفاق وقت طلب است. به خاطر من همین من از این جهت گفتم که رسایل را شما آشنا شدید پایه هشت پایه کتاب جدید آشنا بشن. یک دیگر هم که دقیق بود ارزگردم اونم این که فایده بحث های تو فقه شما شاید بیشتر از جهره دوسر رسایل دیدن. که یه مدارم تو رسایل دیدم که گفتن باید هسفیاتی داشته باشید و کارایی باید انجام بشه دیدیم اگر بخوایم رسال رو بکنیم از اون جهات هم شاید یک کارای غیرسوبی بخواد انجام بشه همین بهتر که الفائق رو کامل بکنیم تا اون بلاها بر سر این درس شده شما امساق نیاد لذا مجموع این عوامه باعث شد که من الفائق رو برای شما امساق با نظر مردستم مدرسا ازش بیشتر روی این بود که نفت کنده اما این کتاب چه معایبی میتونه داشته باشه یکی از معایبش حالا باید ببینیم کتاب رو باید یه مدار ببینیم ولی یکی از معایبی که پیشا پیش میشه حدیثت در مردیشه که اینها کتابای هستن که خب چند کار شده کتابای درسی در بوضعه ما اونجور نیست که مثلا چندین بار آزمایشی تدریس شده باشه و اینها بعد کتاب درسی بشه نه شما اگر اسم و می داشته باشید یه کتاب درسی می نویسید شاید خوش رو همون سال بعدش بگیان کتاب درسی شد دویه مدرسی دویه و به این ترسیم لذا ممکنه یه معایمی از حیث علمی، از حیث حتی, حتی روش های تعدیف از حیث خود کتابش از حیث علمی، چاپی و چیزای دیگرش ممکنه دوش باشه دیگه اونها رو ما دور از ذهن نیست،, نیست. ممکنه برای اون فیش بیار خود نویسندگان جتاپ هم این رو گفتند گفتند که اصلاحاتی با اینا کمک کنند تا اینها به اونور بهتر میشه رضا شما میتونید اشکالاتی بیشنهاداتی یا انتقالاتی داشتید این رو یاد کنید و به نویسندگان این کتابات حقیق بدید تا اگر مناسب و لازم دیدن روش اعمال بکنن این حسنات بهتر میشه یک بدی دیگر هم این درستاره یا عیب دیگر هم این درستاره بمکنم مصبت هاش و منفیاش رو آشنا باشید واقف باشید با این وجود وارد برس هایش اون همین که این ها های جدا جدا یعنی به هم وصل نیست چند تا بحث جدا جدا در واقع میشه گفت چند تا مقاله است میشه گفت چند تا متن جدا جدا به طوری که هم ارتباط خاصی بهشون نیست هم ترتیب خاصی بینشون نیست اما خب اگر در سائل می‌گید مثلا نور فول بخش برایتش بخصه استثابش بخصه پردل و تلاجهش بود اینها خوشتره هم هست و هم رد داره و در واقع بخشی از اصول بود تا انتهای اصول اما تو این کتاب اونجوری نیست. به مجموع به نظرم است که باز همین کتاب رو انتخاب کنیم بهتر است. بسیار اما وارد جزیات این کتاب بشیم شما اگر تو شرح لومه و مقاسب که پارسال خوندید بعضی از فتاوا رو دقت می کردید متوجه می شدید که یه سری از فتاوایی که فوقها دادن اینها بر پایه یک بهت است چه تو چتابا اصولی پیداش نمی کنید یا اگرم پیداش می خیلی روشن نیست یا خیلی بحث مفصلی در موردش نیست. مثلا در مورد سیره اوگلا چه ما تو ازش استفاده میکنیم؟ خیلی. از سیره اوگلا خیلی استفاده میبنیم. مثلا یه فقیر الان مخصوصن. یکی از ابزارهای بسیار مهمش سیره اوگلاست که باید اونو کار کنیم؟ اما تو کتاب های حسولی، مثلا رسائل شیخ هنسید رو چقدر میخواید بگردید تا در مورد سیری اوغلا مطلب پیدا بارید؟ چفایه رو هنوز نخودید ولی بگردید مطلب در مورد سیری اوغلا خیلی پیدا نخواهید کرد. بعدها شایدان آخون و شایدان اساتید دیگر بعد از آخون و اینها چرا اینها یه برس های مطلب کردن؟ مثلا مرحوم مزفر همین برسی سیری اوغلا رو برده دیدید ولی باز حق مطلب ادا نمیشه <تصفيق> برای دیگه این شای دیگران اوگردن اونا که معاصرم اوگردن از حاطید اومدن نگاه کردن دیدن که خب این کافی نیست یک شخصی که میخواد فقیه بشه باید سیدی اوگران خیلی بیشتر از اینها ببینه لذا از بحثایی که انتخاب شد همین بحث سیدی اوگران کتاب رو دیگه کنید اول کتاب رو می‌بینید که بحث اولش سلام من مونم بس شما من خواهی شما فهرست الفایب رو ببینید اگر فهرست رو ببینید در اونجا خواهید دید که شتابیس چه به بحثهای های مهم و پرکاربرد اصولی پرداخته شده ختوبه اصولی رایج یا برای کتاب اصولی دهم شتاب های طوربی درسی چندان به آنها پرداخته نشونه است. این یه مشخصه کتاب هست. حالا اون بحث چیه؟ خب بحث ها زیاده. یه سری از بحث کنیم کتاب این کافته بردار اگر بفرکن همه شما جمعانیم همه این بحث های و کتاب های درسی نیز جمعانی خیلی بیشتر میشه به چندها که اگر کردم اگر اولیش در مانده سیره اوگلانگی روست سر... پک سیره رو رو یه رو چلوه هست او پس هم هست ما گفته هایی که در برای شما شاید فعالم بوده تا حالا گفته ها جوش اینجاشو جوش هر اینجاش هرمیز ایجا نور شده؟ خواهیم. دو سیر بیار سیر متشددیه. متشددیه سیده هایی دارم از اونها استفاده کرده که کاملا سیر متشددیه نه ماسه آنها. اما دی ماسه سیر وگریزه یک مو فصل تره سیر دوم نفس سلخون، آقایی کبسید؟ خایده یک دلخانه آها، لبخانه لبانه یه خایده ایست اگر بود، خب مشخص ما موشن دیدی تا حالا چندگی ماغذی نست کاریم که اگر فنان مدنم بود در شریعت بود حتما برای ما میرسید یک چیزی پس حالا جنرسیده برای ما شکرس همچی چیزی در شریعت نمیده از بیانم برسید همین موضوع دوالی ها با توشید که داد چهارا؟ تمسک احتیاط که نیمیشید موضوعات مستخده به الله و مو در موضوعات مستخده ببینید این هم برصدیل مهم ایست منظور از این چیه؟ مثلا شما در یک آمین میبینید که فرموده است هر از سفر رفتید نمازتون رو چکار کنید؟ بشید روزتون رو هم بشید خب؟ در زمان پیاغل و این مرد مصرح هر سفری مشغول این پرچوب بود این رو میگن چی؟ آمد دیگه درسته اموم در عصف معاصر می که سفر داریم، ولی اون سفر نیست سفر الان شما الان می خواستید به مشهر برگردید چندیل ماه باید تو راه می قبلش چندین روز و شاید چند ماه تمهیدات سفر رو برای آماده می کردید قاوله می دیدید همراه می دیدید این دومی رو می به کسی که از بین از با خود تو که نمی خواستید ببرید نمی دوز میمد میمونم به یه شخص امینی نمیدونم زنش رو میسورد به یه شخصی نمید اینجو چید بچه هاش به این رو خیلی سخت بود بعد که میرفت با کاروانی چیزی همراه میشد تو راه اگر راه خطری حیواناتی سرمایی بخی پولا چیزی از بین برد بعد از چنده ما میرسید به اون مقصدش الان سفرشم الان مشهد همین با حواقیم و صبح خیلی از آقایون همون پتا از این آقایون مشکل شد صبح میرنم مشهد زیارت میکنم زخ برمیگردن سر پارشون خب این سفر اون عموم هست یا نه؟ عموم این رو میگفت گفت در سفر نمازتان شکسته است. برای خب میخفت اون سفر بود شکسته بود این هم سفر است، آمه ما شامل این هم میشه آیا این هم سفر هست من در این نمازم در این سفر نمازم رو بشکنم رو رو بخورم یا نه طرف میاد بگیر نه این سفر اون نیست خیلی فرق داره اونجا طرف میوا این سفر اصلا تفریهه <تصفح> با این سفر چکلینه طرف لذت بره خوشش میاد سره میشه میاد کارشم رو میکنه خب اینجا شک بشه میاد که چطور ما تحت آن بگیریم رو این سوال مهمیه حالا تو این بحث چهارم به این خواهند پرداخت که آیا ما در مورد مسائل مصدسه یه روز میتونیم به اون عمومات و اطلاقات تماس رو پیدا کنیم یا نه بحث خوبیه بعضی بحث از این بحثتان رو من خودم تو کلاس های چه دربه ها داشتیم به پرداختم. این مداری پردام پنجامی بحث که آخری کتاب هست نه این که آخری بحث نه ولی توی این چطاب الازالا نمیدونم چطاب چاپ های مختلف داشته یا نه یه چاپ های داشته نگان که بی فرق نداشته آخره بس که داریم چیم آردی پوزاریم؟ البابی کانست، این جلاز تحقیه روش به موضوع همون نگرد همون راست شده روش از موضوعی به موضوع دیگر ببینید همین بزر سفر شما میگید که آقا اگر بگید نفسیم که سفرهای فیلی تحت آم سفر نیست چون این باقو یا تحت اون نیست آمده ها بیشوند کس من مصر نشون باید بیگون که لخواست با به آقای شما این دیگون سفر هم ندارید بشین نمازتون رو و روزتون رو بیگون آنا راه های دیگری هست تری بسی خوبی باشون و ایسا آخر از رو خیلی تحصال و مفیده خیلی بگرده بخواهم در از رو گفتم سال داریش شانگه مثلا که این مسلا که بزر. اگر اون سفرهای اون زمان توش نماز شکسته نمیشه و سفرها بکنید اونها باید چکست میشه. این چیه این سوشی؟ سوش. سوش. اولادیت یا سوالیت. کنید بزرگید نه اولادیت باید. بیدید خیلی خود از را او او تنگیرمنات اون سفر توش بی خود و زرمن بود این هم صفحه هستی خود و زرمن پس اینجا یکیه که کنون شد حسیل حالا بیپرزید اگر نشد برای دیده چندین راه اینجا میشماره آیه گوسته اونها رو دیسته یک آره افتر بگوش تن مقدر اون رو آره این شبه های درست هست آره این افتاس اولا خصوصی هست ا آبا جم من با ارغای خصوصی نست حجم از موضوع علف به موضوع به هم میتونم تقدیه بدن علف شکستن نماز توش واجبه به را نمیدونیم خب اول این که به اطلاق عمومات را علف کنیم کنیم این هم میشه ایم ولی که اگر نشد می‌کنیم از راهای 550 مثلا ایرادش میشه میدون الف چه خصوصیتی نداره به هم بسونه این خصوصیت داشت به هم بسونه خصوصیات داره به هم بسونه فشار عامل اثرات دارد یک ایرادش دو این تین منو اما پس اول تغییر مارات رو بارها تو کلاسا شد و من تقریبا مطمئنم که خیلی زوایای تگه منات برای شما حل نیست یا آبا فهمید خوده شاید برمیمانه نگاه کنیم مثلا خود ترمیمان ها در فیلی اصلا با از این یه چی؟ در آن این همه لازم نه. پس یکیم ترمیمان ها؟ دیگه؟ اولویت که مثلا زرم؟ دیگه؟ ناسبت حکمه آمه ناسبت ها حکمه و موضوع مطمئنم چند ما شکلی سر روش ب آره، بگیم چی هست، زباده ها شبه، این از ها کبتم اونها رو بگیمیم چون اینجا، دیگر نخون چفاره هست و لحظی خالق محلومیست چند کنیش به از دست میگن یه دو, دو رو بگیم خانم احناس های پسردی کبیم بلیش، شهر؟ مر آسی شریح مر آسی شریح پیلیش کیاس کیاس که با باید بشت بپردازم کیاس رو ها آیا با کیاس میشه اتقال دارد بود فردازم از به بیر یا نه باید بود فردازم از هرش بکنم من دردینی ندارم برای اینکه به رو رو مشخص هرش کنم ولی میدونم مزار هست حالا اینا میبینیم که اینا بی تا آخر سال اجازه اینا رو مفصل بعد ببینید من از شما یه سوال دارم مثلا تو چی درس باشه بحشا بحشا خوبی هست یا های مفید و لازمی هست نه اینو واسه خیلی لازمه اما اگر نصایح رو میدیدی، همون درس‌های الگوجست و اصول فقه یه مقدار مفصلتر و استعادی می‌دیدین جربته رو اونم باشه بگید ببینید بابا درس چیزی نیست که از دسترس دست تو خارج بشه اما این را تا از دستتون دست دست خارج میشد و اگزا من به نظرم این فکر خوبی بود که یه ساعت هم چند سال، ساعتش هم این ساعتش که اگر کسی به خاطر یک دو اصول ببینه درمانین دو اصول تدر بخواه باشه چونکه حالا که در حصم بشه بگیگن حالا به درست های درش آقای بوزارس هم که رایجه محصوصای رسال های که که با نماد نمایش شمعی دوالت فارسیه. اگر کوچولی باد مثلا توی گیبتر مثلا توی جلوی ما باشه اینه که نظر شوهرتی که شرایط دامنی میکنه باید امکان سبزی درست که خیر. ببینید من پس توی چنده اشاره کنم به سین بحثه اصولی شما ببینید تو حوض سه سالت و ادبیات و سایر مقدمات شدید درست دید من تقولیم چه خیلی مهمه سال چهار شما دو تا علم اصلی رو شروع میکنید فقر و چون فقر به تنهایی نمیشه اصول فقر و عمد. اصول فیخه اول شما همون علموجه یه دور کامل اصوله ولی با کلی نواقص چون مختصره دیگه اما فیخه شما شر روم هست بعدی اصول شما پیشرفته میشه پیشرفته از حس هجمشه ولی از حس زمان اقربه هم اصول مزفر رو میخونین درهای که علموجه هست مؤثره مزفر قبل ازشونه. اما عزیز حجمش و اون زمان و مقدار پرداختر به بحث آرش بیشتر پرداخته. لذا این مقدار اصول بیشتر دو دستشون نمید فقه اون چی؟ فقه رو از گردمش کن رو فقه همون یک یعنی سال قبول فقه شما سال اول یک سال بعدش ادامه اصول مزفر رو میخونید فقه هم دواره همون یک ساله فقط مساعدش رو از شد و یکی از اشتالت مهم من خودم پرسال الانجا نگاه میگفتم بهشون میگفتم میگفتم اگر من اینبحث فییرون مثل پارسال شما بگم روشون حال خیانت علم می دیگه که خیانت گاهیمکنفق ندارم خیانته می دخره استاد بعد سال دو وفق یک پله اینا رو ببره بالاتر. لذا من خودم سال قبل این بی داشت حدیث و هدیث سناسی و لححه استتنبا و بهشون میاد و حتی بعضزارشون از نامفصلی های استفاده میکن خب برد که وارد های حرف میشین فقه شما خیلی بالتر بود. مکاسب شیخ یه فقه اجتهادی است اصول شما هم سطح بالا میره اصول اجتهادی رسائل. رسائل از گردم بخشی از اصول بود. حجت و امارات و تعادل و تراجعه بود. این رو اگر کامل میخوندید نیمه دوم اصول برای شما به صورت اجتهادی گفته میشه اشکالی که تو این رساید هست اینه که تو فقه درس خارج اونا خیلی نشون نمیده خودش چون بعض از بحثاش اصلا تو فقه کاربردی نیست رسائل رساید بعضی هم مبانی دیگری یعنی توش اومده رساید این اشکال بعد وارد کفایه که میشه پای نو و در همون اصول رسائره منطقا به صورت خلاصه چون خواسته کل اصول توی یک جمعه شه توی کتاب همون اصوله لذا اون اشبه که داشت رسائر اجامه هست شما کل چه رو می کل یه دو اصول رائز رو می بینید ولی تو درس خارج فق اینگر بدرجو نمی کنه فقه شما که پایی در همونه مرکازه بیشه خیلصه بعد شوال درس خارج میشید اون اشکالات خودشون شما بوده یعنی میبینید اصول چه خوندید خیلی اونجا کاری از شما را نمیدازه اما این اصول الفایق که الان هست این در راستای سوال شما خیلی به در درس خارج کنی بخورد درس خارجی فقر الان شما برو درست خارجی سبحانی درست خارجی درس خارجی دیگه با چی استرناتی میکنن؟ با همین سیری اوهم با هم سیری متشبه لوقان لوقان اطلاق و عمومات و این مواردی که توی این پنجم پنجام گفتیم خیلی به درجه کنید لذا این از سوال شما من این استفاده میکنم که یکی از مثبت های یعنی جنبه های مصبت این انفاید بینه که تو درس خارج فقیل رو بیشتر خواهید دید که به دردتون میخوره تا رساید و چه اما یه دور اصول نیستی گفتم یعنی این رو اگه کسی بیرون به شما اشکال کرد چید؟ آقا الفایق میخونی فایق که یه دور اصول نیست که کم میاری اطفالای اونها؟ نه کم نمیارید ایشالله سال بعد حالای که الفایق خوندید اینو بگم کلیم سرکاری سال بعد پای نو و ده اگر برناقرم الان مظهر مهمه که نه همون کفایه رو ببینید کفایه رو ببینید و درست دیگه نخوند نه, نه چون یه درسون رایز رو کامل ببینید دیگه کفایه رو نبینید مثلا هم زرم بکنید کفایه رو یه دور ببینید الفایق هم خوندید رسایل هم خوندید یه مجموعه خوبی میشه ولی شما این روشان داشته باشید خیلی چیگاه؟ درستم حالا بایده این دا آنها میگم سیزن مزدن هم نسیشون دو بردساره کاری کنم هم متوجه نشده بایده خودمانا خیلی متوجه نشده چی شده تا به سوره نام شده اینا ای باید دست پاچهگی این دو چهر به کتاب اگر خدا به خانشالله میرسیم پس خوبیه بس همین بسیر آخرش هست که نه مهمتر طرف دو یک کاری باید رو برسید همین قرم اول هم مهمه نه سعر ما چه که ایشالله برسید اگر رسائل قول ولی رو قول نمیداد ولی از رو نیمچه قولی میدیم که ایشالله همان بشیم بسیرش رو ببینید خب بسم الله الرحمن الرحیم اولش فصلش همون بحث سیره اقلائیه است اولش یه بحثی از مقدمه داره به عنوان مقدمه بحث میکنه مقدمه اینه ضرورت بحث انحجیت سیرت اقلائیه و شرح مصطلحات یا شرح و حل میتونه می باشه بستگی داره که شرح رو اثر بر ضرورت بگیرید یا اثر بر حجیت بگیرید این مقدمه در واقع طبق این چیزی که ارشد کردن دو تا بحث میشه یک ضرورت بحث از حجیت سیره عقلايه چه چرا ما از سیره عقلايه بحث کنیم دو یه سری اصطلاحات رو شرح بدید طبق این توضیح این رو شرح و به فنیت شرح ال مصطلحات یعنی دو تا بحث بحث اول ضرورت بحث دوم شرح مصطلحات خب الان از شما میپرسم چرا وا باید اصلیه عقلایی بحث کنیم میتونی توضیح بدید درست سیره عقلایی چرا باید بحث کنیم استفاده مصفاه میتونه ها من اینجا اشاره ای پیش کردم این بحثا مهمه در فقه کاربرد داره و امثال اینها حالا همین رو میخواد اینجا اشاره کنه ببینید امر للبحث عن حجیت السیره العقلایته تاوران کبیران فی مباحث علم اصول برای بحث از حجیت سیره عقلاقه دور و نقش بزرگی در مباحث علم اصول هست تا اون به معنی نقش من. یه نکته ای تو متن هست میخوام شما بگید تو متن خیلی دقت کنید کلا هر متنی میخونید توش دقت تو همین یه خط خوندیم چه نکته ای هست اندل بحث ان حجیت سیدت سیدت الاغلایی یعنی الان ما در اینجا بحثمون حجیت پس این در واقعی بخشی از بحث حجت بحث حجت یعنی حالا نمیدونم این کتاب الان این رو تاخرش تا روش خواهد ماند که بحث ما در حجیت سیدت ها آخه میدونی حالتون برس ها میگفتن یادش هست یا نم ما یه درماد سیره اغلاییه میتونیم یه برس داشته باشیم که اصلا حجت هست یا نه یه برس این که سیره اغلاییه چه نوع دلیلیست چجوری میشه ازش استفاده کرد متاجعی مثل قرآن مثل حدیث تو اگه بحث میکنی قران و حدیث حجت هست یا نه، از بحث میکنی خب از قران و حدیث بس مثلا زواهر قران چجوری میشه استفاده کرد؟ این میشه بحث زواهر، چقدر یک میشه. اما حجیت میشه جده دو. منم اعتراض شدید بر تمام یا نه؟ حالا اینجا میگه من جد دوی دارم بحث میکنم یعنی بحث حجیت سیره عقلا. ولی من تقریبا مطمئنم که نه. نحوه استفاده از سیره عقلا هم بحث واقعا میشه جلد یکی. اشکال نداره خیلی خیلی ما پس رو همین سا اگر این اشکار من والد باشه اه کاش این حجیت را نمیگفت کاش میگفت این نداره بحثه انه سیرتر اقلایی چرا حجیت میگیم؟ چون حجیت یعنی که من استفاده کنم سیر اقلایی هجیت از تمام برد تمام شد. اما حالا چجوری زبایه استفاده از اون چجوری کجا استفاده کنم این ها اون دیگه به حجیت رکنم به خواهی من درده این خود سخت میشه دیگه آدم چرا یه چیزی یه لحظه رو بیاره که تو درد سر مندازه خودش رو پس این حجیت اگر نمیبود به نظر بهتر و ظالک من جهته آقای اسخری فرمیدیم درسته؟ اس... اسخری یا اسکری؟ اسخری خب آقای اسخری ظالک من جهته این من جهته شماله یکه میتونی رو جا بنیبسیم بعد میاد پاراگرافه بعدی شروع بشه می و من جهت اونم دوه بعد یه خط پایین‌تر میاد میگه و اعزا من جهت اینم سه پایین یه عظفه داره اینم چهار از چهار جهت شاید بهش گفت که ما میفهمیم که باید سیده اقلایه رو بحث کنیم زارکه من جهت انها مبدعون تصدیقیون لجملتن من مباحث حاضر علمه بطرق باشه دیگه توضیح میکنم مبدع تصدیقین ها دیگه وقت تموم شد اینشالله من بیان و این بحثا رو شروع کنیم سلامت الله اللهم سلامت باشیم